بگذر شبی به خلوت این همنشین درد تا شرح آن دهم که غمت با دلم چه کرد خون میرود نهفته از این زخم اندرون مندم خموش و آه که فریاد داشت درد این ببین که با همه سیل بلا کریخت داغ محبت تو به دلها نگشت سر من برنخیزم از سر راه وفای تو از هستیم چه برانگیختم گرد روزی که جان فدا کنمد باورت شود دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرگ ساقی بیار جام سبوهی که شب نماند وان لعن خنده زد از جام لاج در کوی او که جز دل بیدار ره کی میرسند می رسند خان گر خوابگر باز آیدان بهار گل سرخ بشکفت چندین منال از نفس سرد و روی زرد اونی که ریخت از دل ما سایه حیف نیست گرزین میان آب خورد تیر هم نبرد